بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له شريك في الملك فلم يكن له ولي من دل و کبر و تکبیر و, و سلام على خیر خلقهی و اشرف بریته سیدنا و مولانا خبیب ابن غاسم المصطفى محمد محمد, محمد. محمد. الله وسلم ناموسطهره امام العطر حجت ابن الحسن العسكري المهدي الله بخراب مدنهم خدا فلا انثول الله على اعدائه اجمعين من الان الا قیام یوم الدین خب ارائز ما در این شبه های نورانی ماه مبارک رمضان به خول و قوه خداوند یه شرح کوتاهی بر فرمایشات امیر علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام در نامه سی و نهج البلاغه که شبهای قبل ارز کردم که این نامه مملو از مطالب حکمتامیزه که حضرت امیر تدارک دیدن برای فرزندشون امام حسن و امشب به این جملات می رسیم در ادامه جملات گذشته حضرت می‌فرمایند که و یا که ان تقتر بما به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها ها و تکالوب علیها میفرماید که به پسرشون میگن که مبادا تو رو فریب بده اینکه می اهل دنیا صرف به این دنیا چسبیدن و عریصانه حمله میکنن که بهره بیشتری از این دنیا ببرن تکالوب که اینجا به کار رفته ریشش کلبه همین کلب سگ اینجوری که سگ حمله میکنه که یه چیزی رو بکنه اگه یه تیک گوشتی رو مثلا یا استخونی رو شما این وسط یه بیابونی بذاری سگا حریسانه حمله میکنن که اینو بکنن اینو میگن تکالوب میگه موادا فریبت بده اینکه که اهل دنیا حرص میزنن برای مال دنیا و چسبیدن به این دنیا رها میکنن شب و روز برای دنیا تلاش میکنند و برای آخرتشون قدمی بر نمیدانند آدم گاهی خرید میخوره دیگه. خیال میکنه که خیال میکنه عقب مونده اونم تو این مسابقه میاد چون میکنه میگه که الان مثلا رفیق ما یا پسرموی ما همسال ماست الان این همه مال دنیا جمع کرده ما هیچی نداریم میاد تو این مسابقه فریب اهل دنیا رو میخورد خداوند در چون میدونید اهل دنیا اگه رو به خدا بکنن باز دنیا میخوان من توجه بفندماید این مارم از اونم بیان هیئت گیریشون هم بگیره باز مال دنیا از خدا میخواد این یک گرفتاری اهل دنیاست اینا یعنی اگه کربلا میرن باز میخوان خونهشون بزرگ شه اونجا مگن بگی مثلا زیر گنبد دعا مستجابه اینا میگن که این معامله ای که حسین جان این معامله ای که الان میخوایم بکنیم این بگیره دنیا میخوان مکم بیانم اینجور خدا تو آیات مربوط به حج تو سوره بقره میفرماید قدر بدونین این چند روزی که تو منا هستی بعد دیگه حاجی اومده منا سه روز اونجاست مثلا شد تو عمرش یه بار بره بعضی اون یه بارم شد نصیبشون نشه بعضی یه بار سه روز اومدن منام منام جاییه که انسان خدا انسانو به آرزوهاش میرسونه منام از ماده ایر آرزوه امیر در دعای کومیل میگه بلغنی منای نما هم از این ماده از ماده مناز منو به آرزوم برسون حاجی در منا به آرزوش رسد مهمون دیگه مهمون هر چی بخواد صابخونه براش وقا دو جا بندگان خدا مهمان خدا یکی کجا حج به حاجی میگن ضیوف و رحمان به حاجی ها مهمون های خدا یکی از ماه مبارک رمزانه همون شما مهمان خدای یه جا زمانی یه جا مکانی یه مهمانی مکانی خدا دارد اون کجاست منا عرفات یه مهمونی زمانی داره اون ماه رمزانه بعضی زمانها ارزش دارن بعضی مکانها ارزش دارن این توجه بفرمی مهمون هرچی بخواد سابخونه بهش میدن اما باید قدر خودتون رو بدنش اما مهمان خدای من میشه تو سخنرانیم گفتم شاید بخواه شمیدم یکی مثلا وزیره الان وزیر تو این مارمزون افتاری میده میگه حالا یه افطاری بدم دیگه بعد میگه خب این آبدارچی من یه سال زحمت منو میکشه اینم دعوت میکنم حالا وزرها اومدن شاید رئیس جمهور اومده ولی میگه حالا اینم بیاد رارندم هم بیاد اینم خب زحمت کشیده یه سال رارندش میاد آبدارچیش میاد ساب مهمانی که وزیره مهمان که آبدارچیشی میخواه میگه مهمانی چجوری ها؟ این آبدارچیه وزیر رو صدا میزنه با انگوش اینجوری اشاره میکنه وزیر میاد جلو میگه که مهمان دیگه میگه من سرم درد میکنه قرص مسکن نداریم میگه به روچشم حالا میرم میارم. این نوکر میرد. چرا؟ چون میگه مهمانه. مهمان از آداب مهمانیه. مهمان هرچی بخواد سابخونه تو وستش باشه نباید دریغ بکنه. مگه توانش خارجی باشه. میره یه دونه قرص مسکن میذاره تو پیش دستی. یه لیوان آبم دو دستی میاره. بعد میگه اگه فرمایشی بازم داشتیم من در خدمتم. میره. اما اگه فردا این آبدارچی وزیر رو صدا کنه تو اداره اون میگه دیگه خوی تو لوس نکنه اونجا مهمان بودین حساب اینجا من فرمون میدم تو باید فرمان ببری الان شما مهمانین الان شما فرمون میدین خدا فرمان میده. بعد به خاطر این پیغمبر فرمودن دعا و کم فیه مستجاب اونجا که دعوت کرد به انتون دعیتون الا زیافت الله گفت شما دعوت شدین به مهمانی خدا انفاس و کنفیه تسبیح نفس بکشین ثواب تسبیح دارد نوم و کنفیه عبادت بخوابین عبادت حساب میشه دعا و کنفیه مستجاب هرچی هم بخواین خدا بهتون بینید جون مهمانی اینا گفتن اکرم ضیف ولو کان کافر مهمان مهمانو احترام کنید ولو اصلا کافر بشه ما به خدا بگیم خدای تو خودت گفتی مهمانو احترام کنیم ولو کافر بشه میشه تو خودت یه چیزی بگی خودت عمل نکنی میشه آقا خدا خودش یه چیزی بگه خودش به اون این همه تو قرآن گفته لمت تقولون ما لا تفعلون خدا خودش ما رو توبیخ کرده. گفته چرا میگین عمل نمی کنی؟ یعنی من اگه بگم عمل می الله اینالله لا یخلف ال میاد. من اگه چیزی بگم عمل می کنم. خودت گفتی که مهمان رو احترام کنین خواسته هاشو برآورده کنین. ما مهمان تو این خواستمون اینه. دعا مستجابه. خدا خودش گفته که هر کی به شما بدی کرد اومد معذرت خواهی کرد عذرش رو قبول کنید بدی کرده ولی اومد حالا معذرت خواهی میکنه میشه خدا خودش عمل نکنه این شبه بگیم خدای ما هم اومدیم عذر میخواییم معذرت خواهی میکنیم بد کردیم عذر ما رو قبول کن خدا خودش گفته اگه گدا اومد در خونتون دست خالی ردش نکنید این چقدر گفته خودا میشه تو خودت عمر ما هم الان جدای در خانه تو ما هم از اون اومدیم در خانه ای تو میشه تو ما رو دست خالی رد کنی این توجه بفرمایید حالا قرزمینت چی میخوام عرض کنم سه روز اومدیم منا خدا میگه قدر این منا رو بدونید اما میگه یه عده اهل دنیان منام که میان از ما دنیا میخوام. و من بعد این آدمی که احل دنیا باشه آقا کربلان بره زیر قبه باز میله به دنیا میکنه تو منام که میاد مال دنیا میخواد. اینا, اینا دعاهایی که دارم از فرآن میخونه میگه بعضی اومدن عرفات اومدن منا و من هم من یقول اما دعاشون اینه ربنا آتنا منت دنیا آمد <تص> میگن خدا از این دنیا به ما بده اصلا اینجور آدم ها آقا حلال و حرامش هم برایشون مهم نیست. میگن دنیا باشه حروم هم باشه عب نداره شبه ناک باشه اما ماشین فلان باشه میگه خونه تو فرمانیه باشه اصلا شبه ناک باشه شیشلیک باشه اصلا بگه که من گفتم اینی که میخوری شبه ناکه گفت از این شبه ناکا هر چی داری به فرزخونه ما <تصفيق> گفت من برام مزش میخورم گفت اصلا من به این چیزا فکر نکردم که چی رو خوشمزه باشه به فرزخونه ما بعضی این هم میگن آقا شیشنیک باشه اصلا مشکل باشه خونه بزرگ باشه شرعی هم نباشه ربنا آتنا مند دنیا میگن به ما دنیا بده خدا میگه به چه خدای مهربونی جوانو. خدا اگه شما یه خورده با این آیات اونس بگیرید دیوونه میشین. خدا میگه که من میدم. و ما لهو فل آخرت من خلاق. اما اینا قیامت دست خالی هنها. <تصفح> چکا میمتونن. نه خواستن که. نه تلاش کردن. نه خواستن. نه یه قدم برداشتن. به این. منام که اومده میگه به من مال دنیا بده. میگه میدم. اما بماله او فل آخرت من خلاق اینا آخرت بهره ای یکی دیکه اومد به پیغمبر اکرم گفت دعا کن خدا آرزوی منو بده دعای منو مستجاب کنه حضرت فرمودن هر چی باشه جبون بود گفت هر چی باشه من درست میکنم کارتو خیلی دیگه آقا آدم الان امام زمان به شما بگه آقا شما هر چی بخواید ما پرایت بخواید <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مثلا بگه آقا تو هر چی بخوای من میدم. آدم خونه بزرگ بخواد میده ولی خب آخرت در خالی. این چی گفت؟ گفت یا رسول الله من چهار هزار دینار میخوام تو ازت حضرت توسم کرد. حضرت رسول خندش گرفت. گفت چه آدم قانه‌ای با چهار هزار دینار سرطش هم آورد گفت ولی اگر این دعا میکرد من روز قیامت با پیغمبرت مشهور کن من درست میکردم من می گفت نمیخواد دیگه من میگم درست میکنم این نمیگه من همسایه پیغمبر باشم میگه چهار هزار دینار بگیرم برم سروساتم رو تا همین براش مهمتره که آقا چهار هزار دینار بگیرد تا اینکه با پیغمبر مشهور بشه. اینا, اینا آقایون اون تفکراته ببخشیم مدارت میخوام امام موسیم میدونید به شم چی میگفت میگفت اگه یه خورده آب برا من بیاری شفاعتت میکنم این آقای اون چه کرد این آقای اون چه کرد شد آبم میابرد نمیخورد آب من قسم میخورم اگه آبم میابرد چون عباس از گلوش پایین نرفت که من آب بخورم از تشنه باشه نتونست بخوره که من آب بخورم سکینه تشنه باشه امامم نمیخور امام میخواد هدایت اینا تشنه هدایت هم نه تشنه آب می... همین که بره آب بیاره از شرارتش کم میشه از شقابتش کم میشه این کمتر میشه. همین هم هدایت هدایت همش این نیست من من اگه یه کاری کنم که پا من یه گناه کمتر بکنه هدایته بگم همین ساعتی که اومده اینجا گناه نمی‌کنه بازم هم اینم هم هدایته شما ببین میگم آقا این آقا یه ساعت اومد پا من نشست تو این یه ساعت دنبال گناه نرفت اینم هدایته هدایت هم این هدایت همش این نیست که نماز شب خون کنی هدایت اینه که کسی هم بگه آقا یه دونه گناهش تمیشو یه دونه اصلا یه, <تصفح> یه دونه یا الله گفت چون میگه هدایت همین دوزن هدایته کم کم دیگه دفعه زلفش گره میخوره دیگه هم یه دونه یا الله میگه دفعه بعد اشکش هم جاری میشه بعد میگه عجب حالی میده راز و نیاز با خدا کم کم یه یک پله پله دیگه از تبوتل تا مقامات فنا پله پله تا ملاقات خدا دیگه آبو بیاره بعد دوباره یه نصیحتی دیگهش میکنم شاید دستشو گرفتم اما خب این آدم چی میگرد این جواب چی داد گفت جایزه هایی که یزید به ما میده از شفاعت تو پیش ما شیرین تره این همین هست نمیگه منو با امام حسین مشهور کن میگه خونم تو پلانجا با. میگه اون شیرین تره من برا من اون شیریمتر از اینه که از اینا داریم دیگه من رفیقم میگو آقا رفتم اداره یه کسی کار ما رو راه انداخت یه محبتی به ما کرد گفتم ما هم بچه یتی هستیم دیگه به وجد آمدیم گفتم ایشالله بریم کربلا آقا تو بش برخور آقا دعا میکنی اقلن دعا کن یه فرانفورتی بریم آقا تو مرد حسابی کربلا که یه کشور براق میگو بیشاره تر از خود <تصحیح> یه اگه دعا میکنیم یه مال بده یه فرانگفورد میگه من اون برام شیرین تره من اگه برم فرانگفورد میگه بیشتر لذت میبرم تا برم کربلا کربلا حال نمی کنم اون میگه من یه خونه یه ویلا تو فلان جا داشته باشم برا من جذابتر از اینه که بگن با پیغمبر اکلم محشور میشین ربنا اینا چی میگن ربنا آتنا مند دنیا مون. قوله اینا رو نخور ف... میگه ف... یه کسی آقا وقتی حمله کردم به خیمه های ما حسین یه کسی اومد یه گوشواره رو از گوش یه دختری بکنه گوشواره شد این این همین ما وقت این قسمت نحج بلاغه رو میخونم یاد این صحنه‌ای که اینا حمله کردم به خ... مثل مثل سگایی که حمله میکنن این میخواد گوشواره رو ببره اون میخواد پیرهن رو ببره اون میخواد انگشتر رو ببره ف... میگه فریب اینا رو نخور مثل سگ حمله میکنن میخواد این چیزی بکنن این گوشواره رو کرد و خودش گریه کرد خود اونی که کرد دید خون ریخت روسو گریهش گرفت ببین صحنه چقدر جانسوز بوده که دشمن به گریه در آمد رفیقش گفت چرا گریه میکنی گفت گریه نکنم برای یه گوشواره گوش شد گفت گریه نکنم خود تعجب کرد گو گو اگه اینجوریه چرا کندی؟ خب گوش بده آقا این میخوا این معنی بشه. خب گو تو ناراحت میشی چرا که؟ خب من نمی‌کندم این میگم. خب چرا از دست من بره گیره؟ حرف بزنیم که آقا این جواهره از دست میره. خب بره آقا حرم دیگه مال حروم از دست بره مگه چه خواهد شد؟ من اینجا دارن چپو میکنن مام بنیم بگیم که آقا حیفه بذیشم آقا دارن میبرن دیگه. گوشواره بچه های پیغمبر رو دارن میبرن دیگه. میگو من نکنم این میکنه. این گوش بالاخره پاره میشه. این گوشواره بالاخره به قارت میره. چرا گیر من نه چرا گیر این بیا. میگه فریب اینا رو نخور. فریب اینایی رو نخور که اینا حریصانه مثل سگ دارن حمله میکنن مال دنیا رو بکنن. و باقید هم دنیا میخوا. اصلا حلالش مهم نیه. عرامش مهم نیه. این هیلن امام حسین آقا نم ببره سوقاتی انگوشتر امام حسین امام حسین ببرد دستش کنه بعد میدون انگوشت اینجوریه دیگه الان شما شاید انگوشتر منو خود شما نتونی در بیاری من خودم میتونم منو میتونم این انگوشتر در بیارم اما شما اگه بخواید در بیارم زنده هم ما شاید نتونی هی میکشی در نمیاد حالا آدمی که از دنیا میره باد میکنه در نمیافته. آفته بعد شما آقا انگشت رو ببری یه انگوشت ببری, ببری. این توجه ببرمه بعد شما حس بزنید میگید من دیر به من از دست من میره خب بره با میفرماید که فریب نخور اینا اهل دنیان نه آخرت نیستن که اینا اصلا نمیفهمن فهمن خدا یا نیجی. اینا اگه ای وقت میگم من دارم میگم منام برن این چیزا میخوان اما پشت سرش میگد که همین که تو قنوت ایرانی میخونن و خیلی انتخاب قشنگیه و من هم من یقول ربنا آتنا ف الدنیا حسنه ای فیلی نمیگن نمیگم خدایی ما دو دنیا بده میگن تو دنیا توفیق نماز شب به ما حسنه حسنه چیزیه که بهش پاداش میدن حسنه به چی میگن؟ من جا ابل حسنه او عشق و امثاله ها هرکی یه حسنه انجام بده خدا میگه من ده تا پاداش بهش میدم. حسنه همین روزهی که شما میگید حسنه همین نمازیه که میخونی حسنه همین انفاقیه که میکنی حسنه همین احسانیه که به پدر مادرت میکنی ربنا آتنا فد دنیا حسنه اینا می... نمیگن به مال دنیا بده میگن نه توفیق انفاق بده توفیق نماز شب بده ببرم بالا ببرم بالا ببرم بالا توفیق شهادت در راه خوده حسنه است شهادت حسنه است بالاترین حسنه است قاسم میگف اهلا من الاسر بالاترین حسنه اینه که آدم خونش در راه خدا ریخته بشه, بشه. چی بالاتر از این؟ اصلا یک رو میخوان بگن خیلی ثباب داره میگن ثباب چی داره؟ شهادت داره، ثباب جهاد داره دیگه چی میتوند بالاتر از این باشد؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه تو آخرت رب ما حسنه میخوایم ما میخوایم جهنمی نشیم دنیا که تموم شد که اینا ببینیم؟ اینا اقربه ی دلشون رو به دنیا نیست اقربه دلشون رو به آخرته. ولی اونا اونا کربلا هم همینا رو میخواد امشب هم دلش بشکده کرده اینا رو میخواد امام حسین عرفه دعا کرده من یه بار شما نزدیک دیویستا دو خواسته از خدا خواسته نزدیک دیویستا خواسته تو همین دعای یه دونش دنیا نیم نگاه کنین دعای میخوای یه جا نگفته عروس من مریضه خدای شف... شفاش بده داخلی داریم دیگه دامادم مثلا این مشکل داره نمیدونم دخترم مثلا خونه نداره یک اگه اینا رو میگفت دیگه این دعا به درد ما نمیخورد که ما اگه میخوندیم خنددار بود دیگه من میگفتم عروس من مریضه میگفتم آقا مردی که عروس نداری کس من این چیه میخونی میگم امام حسین گفتم میگه امام حسین برای خودش گفته برای تو نگفته که اون رو دعا کرده. اون بدهی داشته گفته بدهی بدم تو که بدهی نداری که نه چی گفته اللهم از اون آقای اون دیوانه کننده اللهم مجعلی اخشاک که هنی میگه خدایا ما را از اونایی قرار بده که از تو می ترسند. انگار همه جا تو رو میبیند <تصفيق> ببینه آقای این شما بخونی خود دنیا نمیخواد که اصلا ببینید. چون اصلا اقربه وجودش رو به دنیا نیست میگد اینا رو نخور بگه اینا افتادن دنبال مال دنیا ما هم بیافتیم دنبال مال دنیا این توجه بدم نه ربنا آتنا فت دنیا من فت دنیا اصلا رو برای جوان ها یه معنی میکنم یه معناش این است که خدا یه کاری کن تو دنیا از ما راضی باشیم ما اثیر هم شدیم از ما راضی باشی شهید شدیم هست زینب اسیر شد اما حسنه رود دعای زینب مستجاب شده رب بناهات میگیم آخو اسیر شده که میگیم اسیر شده ولی خدا ازش راضیه اسیر شده ولی خدا عاشقشه محبوب خدا میگیم آخو تازیانه میخوره که میگم تازیانه بخوره خدا دوستش داره خدا ازش برای اینه که بی بی میگه ما را ایتو الا جمیلا اونا میگن دیدی چه به چه روزی افتادی اسیر شدی تازیانه میخوری گفت من چه زیبایی ندیدم خدا ازم راضیه اسیر شدم اما رضایت خدا رو جذب کردم محبوب خدا امام حسین شهید شده زیر سم اسف رفته اما خدا ازش راضیه اون عثداش حسد این است که آدمی بتونه خدا رو از خودش راضی کنه تو دنیا خدا ازش راضیه تو آخرت خدا ازش راضیه میگه اینا رو الگوی خودت کن پسرم فریب اینایی رو نخور که چش درمیارن برای مال دنیا همه ای عمرشون رو صرف حرص و طمع برات جمع مال دنیا میکنن ماجا گرفتاره. بعد این مارمزون میاد و میگذره آقا اینا یه شب نمیاند. جایدونه یا الله بگم. به خدا گرفتاره. بگیم چرا نمیاند. میگه من صبح شیش بعد تر کار باشم. میگه خبیه خود یه خود زودتر بیه یه میگه آقا من نوح به زور میام کنه. میگه دیگه میام مثلا میفتن. مال دنیا صبح و شب میدوهیم. شبم که می‌خوابه خود اصلا خودشون میاد میگه شبم که میخوابم هم همش خوابه ببخشید ازشت مضرب میگم اینا که منم به خود من میگم من اصلا تعبیر میکنم. میگه آقا هر شب می‌خوام شب دست شویی‌ها رو می‌خونم ها رو می‌بینم همین مال دنیاست هر کی آقا خواب این چیزا رو ببینه یعنی اصلی دنیا همش دنبال این چیزا همین های دنیا اما تو یه مقداریش نیازه اون نمیگه امام هرثو میگه ولی یه مقداریش نیازه یه مقداری انسان احتیاج دارد باید بره دنبال ما اما نه اینکه که همه امرش رو صرف جماوری دنیا کند نمازش قداشه همه امرش رو صرف جماوری دنیا کنه به نمازش تدمه بخورد به عبادتش تدمه بخورد نه آخرت براش اولویت میگه اینا رو الگوی خودت نکن نمیدونم یه جمله دیگه از این فرم... بعد میفرماید قد نبعکل لا و انها خدا خودش تو قرآن حقیقت دنیا رو برا تو بیان کرده بعد قرآن رو الگوی خودت کنی به بسرم خدا راجع به دنیا چی گفته یکی از چیزایی که خدا راجع به دنیا گفته گفته دنیا همه شما رو نمیخندونه هم در میاره <تصفح> در... ولی یه جا دنیا به کام شماست شما مستانه میخندی اما یه جا هم پات رو به قبله میشه مثل بارون گریه عشقتا در میاره این دنیا همش شما نکنه چهره دنیا اینقدر زیبا هنوز چهره چهره زشتشو به ما نشون نداده یا نشون میده همش که بهار نید پاییزم داره همش که زندگی نی مرگ همش که بچه دار نمیشی داغم نمیدونم هم می‌بینی نمی‌دونم من چجوری پاس کنم اینجوریه که همش بیان میگن چشمت روشن قدم نورسیده مبارکه یه روز هم بیان میگن انشالله آخرین قدمت باشه این دنیا رو بشون نخوری این انو چهره زشتشو همش که سالم نیستی یه جا می درمانی میشی جام میکشی. یه جا درد می‌کشی یه جا راه نجاتی اصلا نی یعنی میگه فریب این خود خدا تو قرآن حقیقت این قر دنیا رو برای شما وصف کرده من آیاته نوشتم حالا دارم معانیشو میگم یعنی من آیاته یادداشت کردم الان چون وقتی خورده گذشته حقایقشو میگم دنیا که همش جوونی نیست پیری هم داره یه جام لگم باید برات میذارند جام یه جام محتاج میشی بچهات باید, باید بیان بشونه همش که خیال نکن آقا اینجوریه که فریب اینو نخور بعدم مثل شکوفه میمونند زهرت الحیات دنیا شکوفه عمرش کمه بله بهار که میشه آقای شکوفه ها میزنه آدم جذبش میشه اما تا میخوای سمتش بری پاییز میشه میدیده تا بخواهید آقا دنیا بعدم میدونید آقایون دنیا اوایل زندگی به دست آوردن نمیاد اغلب تو سنین ماه رو به آدم میکنه اوایل بدوی فقط به سنین ماه که میرسید تازه به کام میاد که دیگه نه معده ای مونده نه اصلا دیگه نه سلامتی مونده اصلا همش محتاجه من یه رفیقی داشتم الان شرکت واردات صادرات داره بچه محل ما بود از بچه های قل مرغی و اینا بود خب بعضیش ازش یه به من گفت بیا دیدن من رفتم دیدنش شرکتش که برو بیایی داشت از این نونخامهی ها آوردن گذاشتن رومیز اصلا از, از اونایی که الان آدم میبینه دیگه اصلا وامیره یه چند تا آوردن و بعد به من گفت یادته ما بچه بودیم مدرسه می رفتیم، سه, سه و نیم تعطیل میشدیم نهارم نخورده بودیم پول نداشتیم بلیط 2000 دو, دو ریال بلیط بود تو تا یک گرمی بلیط بگیریم بریم خونه پیاده می اومدیم ماشین بود پیاده میون بود می با شکم گرسنه بعد میگفت تو راه این شیرینی فروش‌ها اینا رو گذاشته بودن آو اصلو لوچمون آویزون میشد حسرت می خوردیم. پول بلیط نداشتیم اونارو بخریم بخوریم خب اون موقع معده من سنگ و آب میگشت خوب گیرم نمیومد که همش حذت میکن گفت الان میارم میذان اینجا بر اون سمه هم غند دارم هم چربی دارم گفت خب ما نه جوونیمون این دنیا به ما کام داد نه الان به ما کام میده این حقیقت دنیا خب اونجا میدیدیم آه می کشیدیم الان هم تو میخوری من آه می کشم ج نه اون موقع ما فهمیدیم دنیا رو الان فهمیدیم دنیا. این دنیا به ما کام نداد من رفیق دیگه داشتم رفتم قلبش رو گرفت و از شدت درد خودش میگو فشارم الان 18 از شدت قلبش رو گرفت و کارتابلش رو امضا میکرد گفتم آقا نمینی چیکار کنیم. گفت ما سر کاریم سرمون کلا میذاریم بذارم برم که دیگه منو گفت رو با جاش میبنه قلب خودش میگو الان فشارم گفتم 18 این دنیا میگه خدا تو قرآن حقیقت دنیا رو برای شما خود دنیا حقیقت خودش رو به شما نشون داده پشتشترش میگه که و نعت که ان نفسها خود دنیا خودش رو نشون داده به شما که ما این در بریم بیرون آقا در و دیوار این شهر رو ببینید چهل روز گذشت یک سال گذشت جوان ناکام نال الله یعنی چی آقا یعنی یه روزم برای شما میزنم خود دنیا داره میگه آقا من حمدت رو میبرم زیر قاک خود دنیا میگه که من کام به شما نمیدم خودش حقیقتشو رو برای شما بیان کرده بعد تو میگه میخوای بری دنبال این چقدر آدم ها من چقدر تو سخنرانی هم چقدر آدم ها های اگر آن قیمتی برای خودشون درست کردن دنیا بهشون فرصت ندار یه روز برن توش. قفلت که ساخته بشه مردن رفتن زیر خالد. این حقیقت دنیاست دیگه. چقدر آدم آقا ساختن و خودشون نتونستن برن از اونجا کام بگیرن اگر خود دنیا دارد از شما رو موعظه می کند که دنبال من نیاین و بوم بسته کجا رفتن اقا هارون ها کجا رفتن فرعون ها کجا رفتن این هارون میگن ابر رو که میدید میگه من نگران نیستم کجا ببری به ابر میگو به ابر میگفت نگران نیستم برو هرچی میخوای تو ملک من میباری آدم نادون ببین چه جوری صحبت میکنه گفت برو هرچی میخوای برید تو سرزمین منه الان کجاست این هارون کجا رفت الان میدین هارون تو حرم امام رضا دفن همون جایی که امام میذونه هارون هم دفن یه نفر آقا نمیشناسه یه سلام بش میکنه اما اگرم هم بشناسه هم فحش میده به خدا شما اگه بهت بگن آقا میگه خدا لعنتت کنه خدا عذابش رو زیاد کنه این هارونه دیگه این میگه تو میگه تو میخوای فریم اینا رو بخوری برید میگه پسرم اینا رو رها کن برو دنبال اخرت برو دنبال اهل آخرت. دیگه من امشب میخوام دلاتون رو ببرم در خانه علیا و مخدره زینب سلام الله علیه. دیگه امشب حرفا مون داد ولی خب کلمات امیر بلنده آقای اومان موندیم از کجاش بگیم مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. ما نمید ما نمیدونم کجاشو بگیم. من چقدر اینجا نوشتم فرصت نمیکنم بگم. مثلا همون نمیده به من. اما از هر چه سخن دوست خوشتره. این جماونا اونی که بیش از همه اینا دوست دارن اینه که یه عشقی برای حضرت زهرا درستشم هم همینه. همه چی اینجا من یه جمله برای آیون بگم همه شنیدین همه هم هم پای مهم بر بزرگ شدین میدونین همزه سید دو شهدار و احد مصلح کردن همزه رو مصلح کردن بینیش رو بریدن گوشاش رو کندن پاره کردن چشمشو از خدقه در آوردن لباش رو پاره کردن شکممو که پاره پاره کردن اما و احشاستن جگرشو که خورد هند به دندون کشید انگشتان پا رو قد کردن اصلا وقتی پیغمبر اومد این بدن پاره پاره مصلح شده رو دید مثل بارون گریه کرد. اصلا شهادتش واسه مهم نبود و این کینه داشت آتیشش می‌زد که اینا چقدر با این کینه داشتن چرا با این بدن اینجور کردن ای های گریه بدن کرد گو همه شوهر دا گریه کن دارن برای عموی من هیچ کی گریه نمیکنه این نشون میده عرب عربم هم مامم اما شما خط برای بابات بگیری شلوغ چه تسلی دیگه بعد ببینی گریه هم میکنن چقد برا تسلی دیگه میگی ماشالله این جمعیت اومدن اینجوران دارن زجه میزنن گو هیچ کی برا عموم اومدن به مادرای شهید پدرای شهید اوهم زیاد شهید داده بودن عربا به مدینه به پدرای شهید، مادرها، خواهرها گفتن که پیغمبر گیل اینا شوهدای خودشونو رها کردن، آمدن اطراف حمزه رو گرفتن. دارد بولن، بولن برو حمزه گریہ میکردن. مگه خوبی شد؟ هم میث شهید هم اینا با باسه... پیغمبرم هر چی اینا گریه میکردن، دعا میکرد. میگفت خدا خیر بده. هر کی برو عموی من بلند بلند گریه میکنه. خیلی عموشو دوست داره، ان مدینه رفتین گفته هر کی بیاد مدینه منو زیارت کنه اما نره احد و عموی منو زیارت کنه به من جفا کرده پیغمبر خودش هفته ای دو روز می اومد سر قبر حمزه دو شنبه ها و پنج شنبه ها تا زنده بود یه فرسخ راه هم از از مدینه تا اونجا پیاده می اومد هم دوشنبه هم پنج شنبه هفته هم این کارو میکرد حالا اسدرو پهلویش شکسته نمیاد بعد میگو امو اگه تو بودی کسی جرعت نمی کرد زنا مردا پیغمبر دعا میکرد یه جمله بگم جوان ها از اینجا بدون اگه تو هم امرو برای زینب بلند بلند گریه کنی امام زمان هر جا باشه دعات میکرد میگه خدا خیر به اونایی که اومدن برای اموه من با صدای بلند گریه خیلی مجلس گرمی بود پیغمبرم داشت لذت می‌برد یه وقت اومدن به پیغمبر گفتن سفیه خاتون داره میاد خواهر امزه داره میاد عمه پیامبر پیغمبر اومد دستشو باز کرد جلو رو گرفت گفت عمه جان هیچ خواهری یی نمی‌تونه بدن برادرشو اینجوری بشه تنان من اجازه نمی‌ده بود تاغت نمیاری. گفت رسول الله من از مدینه تا احط دویدم صفیه یه فرسخ گفت دویدم گفتم تا خاکش نکردن یه ودایی بکنم یه درد دلی بکنم یه بهرهی ببرم گفت یا رسول الله من از اینجا بر نگرد ناومیدم نکرد بزن من برادرمون ببینم هیغمبت سلاح ندید اما شو برگرد اومد عباش و انداخ رو بدن حمزه عبا بندازی پا بیرون میمونه دیگه آبا دید انگشتان پا رو قطع کردن گفت خواهر انگشت بریدرم نبیده انقدر از این خارو خاشاک نیخ پا استتار شد بعد اومد امه قسم داد گفت امه جان بیا ولی عبا رو کنار نده فقر میکنی از رو آبا میبوسی از رو آبا درد دل میکنی خداحافظی میکنی از رو آبا باشد دقیقه پول داد، من عبار رو کنار نمیزم من از شما میپرسم مگه سر همزه رو بریده بودم نه. بی سر که نبود از امام زمانم معذرت میخوام مگه رو بدن همزه عصد دویده بود نه زیر سم عصد که له نشده بود اما زینب رو آوردم تو گودال قتلگاه نه روپوش ننداختند حالا روپوش که ننداختند این پیراهن پاره پاره رو به قارت برده یعنی بدن اوریان پاره پاره بیسر اما زینب کاری کرد عبارت مقتل تو زیارتنامه هم هست زینب کاری کرد دوست و دشمن به حالش گریه می کرد. عبارت مقتل حالا دوست گریه میکرد. خب یعنی روباب خیلی عجیب نیست سکینه اما دشمن گریه میکرد یعنی خولی یعنی سنان یعنی عمر راوی گفت نگاه کردم دیدم اسفه هم دارن گریه میکرد حتی خویوله هم pacote史... <face> به جوانا بگم جوانا از اف کمتر نباش اسفه برای زینب ناله زدن زینب چی کار کرد مثلا فیر میکنی اومد موهاشو چند پیرنشو پاره کرد صورت شد چند گنده خون اومد نه شما ازا اینا رو بخوایی ببینی همین فردا بری بهش زهران میبینی یه جوونی با موتور، ترسادت که به شده زنده به تریگی مثلا میادنش خواهرش میاد مادرش میاد چند میدازه ما هزار بار دیدیم پیرنشو پاره میکنن من خدا شایده میبینم گریم نمی‌گیره. میگم طبیعیه دیگه. مثلا بنام طبیعیه این. میگم خوهر بیاد کنار بدنه و هم این کارا رو میکنه. اگه زینب این کارا رو میکرد. نگریه نمیکردن. من قسم میخورم میخندیدن دشمن شادن میشوند. یعنی هلله هله میکردن. شادی میکردن. میکردن ما هم رو میخواستیم. اما زینب کاری کرد. اینا احساس هقارت کردن. احساس پستی کردن. به پستیشون اومد وارد گودال شد دست شنداخ زیر این بدن پاره پاره یه آورد بالا گفت خدایا این قلیل قربانی رو از ما به کرمت قبول <تصفيق> ما روزه زیاد خوندم روزه خونم من زیاد دیدم اما من همچین روزه خونی ندیدم این دست شو آورد خب برگ سبزیز توفه درویش. از ما قبول. همینجور که این بدن رو دستشه رو کرد به مدینه خب یا رس... رسول الله حازا حسین حازا حسینو که <تصفيق> مرملون به دماغ مطلوب الامامت وردا، این کشته فتاده به هامون حسین تو یه جمله به خدا گفت، یه جمله به رسول، و... یه جمله به امام زمانش که رو دست بشه. خدا رو گفتم، پیغمبر یه نگام به امام حسین کرد، این خیلی جانسوزه. گفت حسین جان یا من علا صدر المصطفى. گفت انقدر دیدم رو سینه پیغمبر بازی می‌کنی. رو سینه پیغمبر نشستیم و یا من علا وجه سرا اما چی شده برادر امرو رو خاک های داغ کربلان بدون قصد بدون کفن و الله خوالی یا اهل بیت نبوه